چند لحظه ای مکس کردم به انتظار اینکه که او بدود توی حرف منو من به او تحکم کنم و بگویم و راست به هم راست بگوییم فرنگیس هیچ نگفت معلوم بود که مسخر من شده است انکار نکرد سرش را پایین انداخته بود انگشتان دو دستش را به هم قفل کرده بود مانند مجسمه بی حرکت نشسته بود پیراهن سبزی که بر تنداش به او می آمد. گیسوان آویخته روی شانه هایش چند موج داشت. فقط گردی صورتش پیدا بود. ملایم بدنش را تکیه داد و به پشتی صندلی راحتی تکیه کرد و چشمهایش را به رومیزی ماهوت سیاه و گلدار دوخت. کوشیدم نگاه نافذی به چشمهایش بیاندازم اما به من نگاه نکرد. دیگر مانند جوجهای در دست من اسیر بود. گفتم، خانم اسم شما چیست؟ نپرسید اسم من در مقصود شما هیچ تأثیری ندارد من همان کسی هستم که شما جستجو میکنید این را میدانم بسیار خوب اسم حقیقی شما برای من زن ناشناس باشد آیا مایه که با هم راست و سمیمانه گفتگو کنیم؟ از جان من چه میخواهید؟ لحنه او تأثراور بود دلم را سوزاند خجالت کشیدم که با چنین شدتی با او رفتار کردم فرانگیز همانند همه آدمهای خودخواه وقتی ذلیل میشد رقت انسان را برمیانگیخت اینها فقط در اوج فرمانروایی میتوانند بزرگ جلوه کنند وقتی ضربتی خوردند ذلیل و بیچاره میشوند جوابی ندادم اما او پرسید آقای ناظم آمدید اینجا که مرا شکنجه بدهید؟ نه برعکس آمدم که هم خودم و هم شما را از کابوسی که زد جرمان میدهد رهایی بخشم. منطقه مقصود اساسی من این نیست. شما و آقا رجب تنها کسانی بودید که استاد را میشناختید. آقا رجب مرد و هیچ نگفت. شاید به دلیل اینکه او را ترسانده بودند. شاید هم نمیفهمید و یا خود را به نفهمی میزد. اما شما او را می میشناسید شما اساری را از زندگی او میدانید که انتشار آنها برای نسل معاصر و آیندگان ضروری است شما میتوانید مراریا کار و شاللاتان تصور کنید حق هم دارید برای اینکه کشف رمز زندگی استاد یک جنبه خودخواهی هم برای من دارد من زندگانی خود را دانسته یا ندانسته وقف او کردم و باید راز زندگی او را فک می خواهید زندگی استاد را بنویسید شاید اگر جنبه عمومی داشته باشد و بتواند برای مردم سرمشق باشد شاید بنویسم پس اگر را که میدانم بگویم شما در کتابتان علنی خواهید کرد من زندگی شما را نخواهم نوشت آشنایی با زندگی استاد برای مردم سودمند است شما میخواستید با من صادق و صمیمی باشید مگر تا به حال به من دروغ گفته اید بله تماچه در تالار موزه درباره فروش آثار استاد ماکان به شما گفتم دروغ محض بوده است از زمانی که من در این مدرسه هستم یک تکه کاغذ هم که قلم استاد به آن خورده باشد بیرون نرفته اما همیشه اینطور نخواهد بود تا به جال استاد آثار استاد را هیچ کس ندازدیده که سهل است حتی من تا آنجا که توانستم بسیاری از پردهها و ترهای استاد ها هم که خودش در زمان حیاتش به این آن فروخته یا بخشیده جمع‌آوری کردم. اقلن صد اثر او را به نفع دولت خریدم و این موزه به این موزه برگرداندم. با وجود این امشب این تابلا را به خانه شما آوردم و حاضرم که همینجا بگذارم و بروم. پس با پول نمی‌توانید من راضی کنید. ده سال است که چشم به راه شما هستم. شما صاحب این چشم ها هستید زن ناشناس تکان سختی خورد هر دو دستش را روی لبه های صندلی راحتی گذاشت بدن نرم و ورزیدهش را راست کرد و گفت نه اینطور نیست این چشم ها مال من نیست اما این لب و دهان و پیشانی و صرف و گونه ها که حتما از آن شماست شاید شاید پس چطور آن چشمه از آن شما نیست؟ آقای نازم لحنش ملایمتر و تماس کننده تر شد باز هم دلم سوخت زیاد سخت گرفته بودم آقای نازم با یک کلمه نمی شود جواب داد شاید حق با شماست شاید اگر یک بار در زندگی آنچه را که به من به سر من آمده نقل کنم و را که به قول شما به هیچ کس ندادم به شما بدهم برای من بهتر بشود و این سایهی که همون همه دنبال من است از من دست بردارد شما میل ندارید؟ یک گیلاس کنیاک بخورید؟ من سر تکان دادم در هر صورت گفتگوی ما امشب زیاد طول می کشد. اجازه بدهید دستور بدهم که برای شما هم شامی درست کنند. برای خودم هم میگویم یک گیلاس کنیاک بیاورند. اعصاب من از هم پاشیده است. از ساعت 4 و نیم که پیش شما آمدم تا حالا در و وحشت هستم. اما فقط امشب اینطور نیستم. الان یک ماه است که به تهران آمدم و چند روز است که برای دیدن این تابلوها در تشویش هستم. هر وقت سر سال اون می شود، همین حال به من دست می دهد مخصوصا به نقاط دور دست می که دسترسی به تابلوها نداشته باشم امسال دیگر تاب نیاوردم از جایش بلند شده بود داشت می رفت به طرف در گفتم بسیار خوب تا شما دستورشان بدهید من تابلو را باز می کنم نه صبر کنید برگشت به طرف من دستاش را رو روی بازوی صندلی که روی آن نشسته بودم گذاشت و گفت صبر کنید، من الان آماده نیستم دار را باز کرد و بیرون رفت من اساسی اتاق را تماشا می کردم بالای اتاق میز تحریر کوچکی بود و روی آن چند کتاب و مقداری کاغذ مرتب چیده شده بود یک چراغ پایدار بلند با حواب سبز آنجا را رو روشن می کرد. طرف راست نیز قفصه کوچکی بود پراز کتاب به زبان فرانسه روی میز عکسی از استاد دیده میشد قاب منبکاری داشت پردههای اتاق به رنگ سرمهای بود روی کمدی که دیوارهای آن از شیشه سنگی کدر بود چند مجسمه قدیمی چیده شده بودند منظره جماران بر جلوی اتاق میافزود دو صندلی راحت دیگر و یک مبل بزرگ اساسی اتاق را تکمیل میکرد از جایم بلند شدم و به طرف دیوار رفتم که تابله استاد را تماشا کنم. در همین زم زن ناشناس در را باز کرد و دنبال او کلفت با یک سینی و دو گیلاس وارد شد. آنها روی میز گذاشت و رفت. زن ناشناس از کمد یک بطری کنیاک در آورد و روی میز گذاشت و نشست. یک ته گیلاس کنیاک خورد. کمی فکر کرد و گفت بگذارید اول بگویم چگونه با او آشنا شدم بعد هرچه میخواهید بپرسید من سوالی ندارم از شما بکنم دلم میخواست هرچه بیشتر درباره او صحبت میکردید من نمیخواهم از او... از زندگی خودم برای شما چیزی بگویم در زندگی من هیچ چیز ای که متمایز از سرنوشت بیشتر مردم باشد وجود ندارد و تازه شما چه علاقه به من و سرنوشت امثال من میتوانید داشته باشید اما استاد به اندازه یک سر و گردن از همه بر خودش بزرگتر بود